در غروبی ابدی هنگامی که کبوترهای سپید بر بامهای بلند آسمان پرواز می کنند، قلبی را که در انتظارت می تبد. من یک ایرانی و از دیار شهر باران، واقع در استانی سرسبز، سرشار از جنگلهای فراوان، در کنار آن همه رود خروشان، در عبور از شالیزارهای خوشرنگ و بوی گیلان، در شهر زیبای رشت به دنیا آمدم. در بهترین نقطه از این جهان پهناور با داشتن آب و هوای معتدل شمالی به تماشای بارش باران این نعمت بی همتا و قطرات زیبا و فراوانی که شاهد باریدنش میمانیم و میبینیم و هرگز از دیدنش سیر نمیشویم. مگر میشود زیر باران راه رفت و خیس شد ولی شاعر نشد مگر میشود هوای به این زیبایی را تنفس کرد و عاشق نشد آری مگر میشود در این شهر شلوغ و پر رفت و آمد با وجود این همه مشکل، گرفتاری، بیکاری و مرگ و میرهای سرطانی که اخیراً خیلی هم زیاد شده و هیچ ربطی به سن و سال ندارد، این همه موارد را دید و تفاوت بود نوشتن حداقل درگل کاری که باید کرد راه رسیدن به آرامش درون و راهیابی به روشهای خیلی ساده برای جلوگیری از هیجانات عصبی که امروز همه به نحوی درگیر این هستند همه ی این موارد را به زبان خیلی ساده به طوری که حتی یک جوان پانزده ساله به مفهوم و منظور کلمات عمیق این کتاب برسد با بیانی معمولی و از بیکارگیری حرفها و جملات غیر تخصصی در متن کتاب گنجاندیم و تا آنجا که عقل و اندیشه مجال باورها و داشتههای ذهنی که شاید ذرهی به درد کسی بخورد، تصمیم گرفتم به روی کاغذ بیاورم. اما قبل از هر چیز باید از همه نویسندگان بخصوص خصوص اساتید روانشناسان بزرگ در همه جا عذر خواهی کنم و امیدوارم که این حقیر را ببخشند و مطالب مرا در قیاس دیگر بزرگان قرار ندهند. فقط خواستم با عشق و علاقهی که به روانشناسی داشتم کمی جسارت کرده و به عنوان درد و دل معنوی در شناخت ناچیزی این حرفه قرار گرفته باشم. زیرا از وقتی برای شناخت روح معنوی بیقرار و سرگشته شدم و این همه سال عمرم به بیهودگی سپری شد واقعا از خودم شرمگینم. که بزرگترین و قدرتمندترین خالقم، این همه وقت منتظرم بود دقیقا جلوی دیدگانم و من آنقدر غرق در افکار مادیگری بودم که او را از یاد بردم امیدوارم رویای معنوی بتواند هدف واقعی و مقصود مرا به طور حقیقی در زندگی و فکر افراد تاثیر بگذارد و مسیر درست زندگی کردن و باور اعتقادی به روح معنوی یا ندای درون را به کسانی که پا در این مسیر نهادند نشان دهد و بیشک نیز چنین خواهد بود به شرط آنکه با چشم دل بنگریم شاعر چه زیبا گفت همه هست آرزویم که ببینم از تو روی چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی فصیح زمان شیرازی رویای معنوی الهام گرفته از پدر معنوی جهان استاد وین دایر، با خواندن کتاب ندای درون وینداگر انگیزه پیدا کردم تا اعتقادات و باورهای عرفانی درونم را به روی کاغذ بیاورم تا در قالب کتاب یادگاری برای بازماندگانم باشد. امیدوارم تأثیرگذار باشد. وقتی قروب با رنگ ملال انگیزش آمد من هم تمام می شوم و به همراه غروب میروم. بعد از آن روز تو خواهی دانست که من که بودم. و چه میخواستم؟ روزها به خانه نمی‌آیی و شبها اندیشناک در میان خانه قدم میزنی و در هر گوش نشان از من خواهی یافت حتی شعرهایم در میان دفترت مرا به یاد تو خواهد انداخت؟ وقتی گمان می کنی که زندگیت به تو پشت کرده حتی رنگ آسمان را غمگین میبینی؟ واحساس میکنی زمین و زمان با تو قهرند از طرفی خانواده و اطرافیانت وقتی با چهرهٔ برافروخته و در همه تو روبرو میشوند باران غم را بر سر آنها نیز دوچندان خواهی ریخت و در چنین لحظاتی هست که آدمی در خودش فرو میرود و از درون خودش را میآزارد و خودخوری میکند و در اندیشه فرو میرود مدتی در کنج تنهایی خود قر شده و در سکوت غمگین خود با افکار پریشان و به همریختهش دارد زیر لب نجوا می کند که دیگر واقعا از زندگی سیر شده و دیگر توان ادامه این زندگی نکبت بار را ندارد و دلش به چی باید خوش باشد؟ ناگاه از درون این همه غم و اندوه و ناامیدی ناگهان ندایی زمزمه می کند. به اطراف خود نظری می اندازد که ببیند صدا از کجاست اما تنهای تنهاست. دوباره ندایی از درونش بهش نهیب زد بلند شو برو پیش زن و بچت تو هیچ مشکلی نداری فقط آرزوهایت کمی بزرگتر از زندگیت هستن. دوباره شروع کن شکست در زندگی تجربه بزرگی است که به کارت میآید قبل از هر چیز ایمان درونت را تقویت کن که انگار چیزی ازش باقی نمانده لحظاتی گذشت و یکباره که انگار خون تازه در رگهایش جریان پیدا کرد مثل فنر از جایش بلند شد و خاست دنبال صدا بگردد که متوجه شد با خودش داشت حرف میزد. ولی با این حال خوشحال شد و با انگیزه فراوان به طرف خاش افتاد. از خدا طلب بخشش میکرد زیرا مشکلات و گرفتاری های زندگی و بیکار شدن باعث شده بود خدا را از یاد ببرد و از خودش نیز اما ندایی از درون ذهن و قلبش، او را بیدار کرد و او توانست صدا را بشنود. همان صدایی که هر روز از نهاد همه ما بیرون می آید اما اکثریت خودمان را به نشنیدن میزنیم نیازمندی را از دور می بینیم بیزار راهمان را عوض می کنیم. به خیلی ها برخورد می کنیم بلی دروغگو خطابش می کنیم تا وجدان خود را راضی کرده باشیم. زمین را میدان فوتبال تصور کنید و داور همان خدایی است که تعیین می کند توپ دست چه کسی باشد و ما بازی کنان این زمین محسوب می شویم. داور بر اساس عدالت خیلی پیشتر از اینها سوت بازی را زده بود. حالا دیگر به ما بستگی دارد چگونه بازی را اداره کنیم و توپ را مال خود کنیم. توپ نوعی دارایی مالی محسوب می شود و تمام آدمها برای بدست آوردنش، تا آخرین نفس در حال دویدن هستند قافل از اینکه با بازی بدون توب هم میتوان عالی بود همه تلاش می کنند تا به جایگاه خوبی در امور مادی برسند و وقتی به دستش میآورند حرص و طمع در وجودشان رشد میکند و جوری از نیازمندان و ناتوانان رد می شوند که گویی انسانیت را از یاد بردهند انگار که هرگز قرار نیست بمیرند این مثالها را زدم تا موضوع را به اینجا بکشانم تا بدانیم در دنیای خاکی که همه با سرعت به دنبال زواهر دنیاوی هستیم در کنار یکدیگر قرار است یک عمر را در این دنیای فانی سپری کنیم دنیا گلستان می اگر کمی به هم فکر می کردیم. و همه این دوست داشتنها و به یاد هم دیگر بودنها و برای هم دلتنگ شدنها فقط در یک کلمه سه حرفی خلاصه می‌شد و آن عشق بود فقط همین را درک می‌کردیم نه تنها بهترین زندگی را بلکه برای رسیدن به همان رؤیاهایی که حسرتش را می‌کشیدیم بر درک واقعی معنویت خواهیم رسید خوب بودن زیاد سخت نیست فقط باید راه درست را پیدا کنیم مقصد خودش آشکار می‌شود به نظرم نوشته ها دارد کمی رنگ و بوی نصیحت به خود می گیرد و باید کمی تغییرات در ادامه باورهایم ایجاد کنم. بله از مقصد میگفتم از هدف والا. جهان عرصه جولانگاه استعدادهای بیشمار بشری است که هر استعدادی با تناسب ظرفیت طبیعی خود میدان می و طبیعی است که برای میدان گشایی موقعیت سیاسی و اجتماعی خاصی لازم است. اصولا هدف چیست؟ هدف عبارت است از اساره و راهگشای هستی و وجود داشتن که همه اعمال و آرزوهای انسان را دربر بر و اما بنده حقیر که وابسته به قش روسای این جامعه هستم بلی هیچ که با فقر و محرومیت آشنا و با دردها و رنج‌های مردم در تماس مستقیم بوده دوست دارم در آینده تمام هستی خود را در راه خدمت به خلق و توده محروم جامعه صرف کرده و در روند حرکت مردمی و انقلابی گامی مؤثر هرچند کوچک بردارم برایم شغل و حرف مطرح نیست هدف در قلب جامعه ذوب شدن و در راه خدمت به خلق و به خدا رسیدن و به خدا رسیدن است یعنی هدف خداگونه شدن در طبیعت پست مادی است تا آدمی بتواند خود را به گونه تکامل خداوندی برساند و یا به عبارتی هدف زنده بودن در تاریخ است قبل از اینکه تصمیم بگیرم به دنبال روح معنوی خودم بروم، کمی خیلی قبلتر از حالا مشغول خواندن اشعار مولانا بودم، شاید پانزده یا بیست باری میشد که این شعرش را مرور میکردم تا اینکه خیلی کنجکاف شدم تا از این شعر به طور واقعا جدی سردر بیاورم که چه سری درونش نهفته است این شعر زیبای مولانا که برای همه بسیار آشناست. ماندهام سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم کافی یک بار پی به عمق این شعر ببرید وقتی تصمیم گرفتید که هر جور شده به جواب برسید شاید بتوانید ذره اقراق نمی نمیکنم فقط امثال بزرگانی چون شمس، مولانا، اتار و حلاج چه خون دلها خوردند و چه ریاضتها کشیدند تا ما از همه این عزیزان به نیکی یاد کنیم با اینکه که راه رسیدن به خدا را برایمان هموار کردند ولی باز می‌بینیم که زواهر فریبنده دنیا قدرت نمایی می کند حوادث و پیشامت ها بیشترین قابلیت را برای تغییر در افکار ما دارند و این یک قانون است اگر هر رویدادی هدف و منظوری داشته باشد زندگی شما هم خود به خود هدف خواهد بود اکثریت مردم زندگی شاد و بینیاز بودن را که با ثروت فراوان دخیل می شود. سعادت مندی به قول واسفانی از بدو پیدایش تمدن انسان به دنبال سعادت بود این جستجو در گذرگاه زمان ادامه یافت انسان کشف کردی که لذت هرگز پایدار نیست و همیشه در پایان راه به درد ختم می‌شود ثروت نیز ناپدید می‌شود شهرت همانند باد گریزپاست و موفقیت نوعی توحام است پس چگونه میتوان سعادتمند بود؟ برای یافتن مقصد باید راه را بلد بود. برای اینکه بتوانی تابلوهای های زیبا بکشی باید نقاش خوبی باشی و همینطور برای اینکه معتادی را از دام اعتیاد برهانیم در وهله اول باید خودمان سالم باشیم. وقتی میخواهیم وارد معابد و مکانهای مقدس و پاک شویم حتماً باید از پاکیزگی درونی خود مطمئن باشیم. خوب زندگی کردن دل پاک می خواهد. وقتی توانیستی دلت را پاک نگهداری آنگاه همه بی اختیار جذبت می شوند و دوستت خواهند داشت. در درون همه انسانها دو روح وجود دارد. روح معنوی و روح مادی. همانند پیبردن به اعمال خیر و شر یا خوب و بد، وقتی آدمی به رشد کامل عقلی رسید، انتخاب برایش دشوار می‌شود. زیرا می‌فهمد که برای رسیدن به کمال باید از خیلی چیزها گذشت. منظور من از اعمال، عملکردهای خودمان را گفتم. مقایسه نکردم راه و روش زندگی کردن ما تغییر می‌کند. به کدام سمت کشیده می‌شویم؟ البته اکثر آدمهایی که شب و روز به ثروت‌اندوزی مشغول هستند، و با وجود مال و اموال کافی علاقه فراوانی دارند که مادیات را از هر راهی به آورند بیشک به روح معنوی باور ندارند و کمک کردن و بخشش را هرگز در اعمالشان نمیبیی. افراد زیادی را میشناسیم که هم ثروتمند هستند و هم پولدار، و همیشه برایم عجیب بود که چنین آدمهایی که حتی ذره بوی از انسانیت نبردند، و هرگز با داشتن مال فراوان به هیچ نیازمند و فقیری کمک نمیکنند چگونه در رفاه و آسایش زندگی میکنند روح مادیک در وجود این آدمها است تا آخرین لحظه از عمرشون از وجود خدا قافلند این افراد احساس سعادتمندی می‌کنند. البته اینها فقط ظاهر قضیه هست که از دور می‌بینیم. ولی وارد زندگی همین اشخاص ثروتمند که بشویم و چند روزی با آنها زندگی کنیم، تازه میفهمید که آنها با وجود ثروت فراوان هیچ کدامشان یک شب با خیال راحت نمیتوانند بخوابند. ایمان به خدا باعث ایجاد آرامش درون میشود. وقتی توانستی به عنوان یک انسان موجودیت خود را به عنوان اشرف مخلوقات ثابت کنی، و پی به ذات واقعی خود ببری و متوجه وجود ذات الهی در درون خودت بشوی تازه میفهمی که تمام این مدت هر کاری که می کردی خدا هم با تو بود و شاهد همه کارهای خوب یا بد تو اما حالا که می توانی وجودش را در درون خودت حس کنی راه خوشنود کردنش را هم پیدا خواهی کرد امروز بیشتر آدم‌هایی که باهاشون برخورد داریم، کمتر کسی را میبینیم که در مسیر خودشناسی یا عرفان باشد. اکثرا به قطری گرفتار های زندگی و کار روزمره هستند که اگر از آنها در مورد مسائل این اینچنینی می‌پرسیم، جواب‌هایی میشنویم که باید گفت تا حدودی حق دارند. به هر حال زندگی برای طبقه متوسط به پایین خیلی دشوار شده و اکثر خانواده ها با کار کردن سرپرست خانواده باز به مشکل مالی برمی خورن و بدین جهت دو یا سه نفر از افراد هر خانوار مشغول بکارن و اگر در یک جمله بخواهیم جامعه کنونی را تعریف کنم پولدار پولدارتر می شود و فقیر فقیرتر اجناس بدون توقف رو به گرانی است و کسانی که زیر خط فقر زندگی می کنند دیگر به زودی برای خرید نان به مشکل برمیخورند گفتن این موضوعات برای این بود که با پیبردن به وضعیت کنونی مردم و نشان دادن عمق فاجعه تنها چیزی که برایشان مانده کمی امید به آینده ای روشن و داشتن ایمان به خدایی که هرگز بنده هایش را تنها نمیگذارد قدیم‌ها بزرگترها به ما می‌گفتند وقتی غرورسنگی از در وارد می‌شود ایمان از پنجره می‌کاریزد و ما با کمک کردن به هموطنانمون باید کاری کنیم که امیدشان را از دست ندهند زیرا نداشتن امید یعنی پایان زندگی و یکی از دلایل نوشتن این کتاب باز کردن چشم بسیرت انسانهای است که حتی نمیدانند پولهایشان را چگونه خرش کنند در حالی که شهر پر شده از کودکان کار و فقیرانی که وعده غذایش را از سطح زباله برای سیر کردن شکم خودش و بچه هایش تأمین می کند. حال چگونه می توان به برادران و خواهرانی که با یک وعده غذایی روز و شب را سر می کنند روح معنوی را نشان داد البته مسلم است که دل آنها به خدا نزدیکتر است و در شناخت خدا آنها از هر محلی استادترند و ما باید از چنین آدمهای درد کشیده ای راه معنوی را بیاموزیم به قول لئون تولستوی دین به عملکرد آدمها بستگی دارد و دیگر هیچ افکار آدمها قابل تغییر است یعنی آدمی در هر لحظه از زمان و مکان به روشنگری که رسید مورد قبول خداست هر کسی در زندگی به نحوی در مسیر درست قرار خواهد گرفت امیدوارم برای خیلی ها دیر نشده باشد راستش من خودم گذشته ی زیاد خوبی نداشتم همه ما زمانی کارهایی کردیم که به آن افتخار نمی کنیم. و من نیز همانند خیلی از آدمها صدایی از درون خود شنیدم ندای درون برای خیلی ها پیش آمده و نشانه هایی که ما بی توجه از کنارشان عبور ما خدا همیشه برای دلهای پاک نشانه میفرستد تا بنده را در مسیر درست قرار دهد. اما قرار گرفتن در مسیر واقعی و الهی تازه اول راه حساب می شود. و اینجاست که برای خودسازی کم کم از اعمال گذشته خداحافظی کرده، چشم ظاهر بین دنیا را شستشو داده و کارهای نیک را تمرین کرده سعی کنیم به خوبی کردن و مهربانی عادت کنیم. تا جایی که می توانیم ببخشیم بی و حتی بدون انتظار تشکر از هر کس بد می دیدیم، بهش خوبی کنیم و با همه بگیم و بخندیم سعی کنیم از کسی که نداشته باشیم و حسادت نکنیم چون خودمان بیشتر عذیت می شویم برای امتحان یک روز که از خواب بیدار شدیم تا موقع شب که وقت خوابیدن است به همه احترام گذاشته و با لبخند سلام و احوالپرسی کنیم و در صورت نیاز اگر کسی کمک خواست زود پیش دستی کنیم. مخفیانه کمک کردن خیلی زیباتر است. و بعد لذت خوابیدن را در شب بسیار احساس می کنیم. یعنی خیلی راحت به آرامش درون خواهی رسید و هر روز به خودتان قول می دهید که آدم بهتری باشید. خوشرویی، محبت کردن و مهربان بودن زیاد سخت نیست. قلبت را نرم کن. عصبانی شدن، هرس خوردن و استرس باعث می شود اولا روز خوبی نداشته باشیم و کارهایمان را نتوانیم درست انجام بدهیم و خیلی زود احساس خستگی به ما دست می دهد و خواب خوبی نمی توانیم داشته باشیم تا دیر وقت به جای استراحت هرس و جوش می خوریم. در نتیجه خوب بودن و خوبی کردن وقتی قلبی باشد راه ورود به ذات هستی برایش باز و هموار خواهد بود انسان در دنیای فانی مالک هیچ چیز نمی باشد حتی فرزندانی که به دنیا آورده و بزرگشان کرده ایم. همه ما به دلیل باهم بودن و تشکیل خانواده دادن با همدیگر وابستگی شدیدی پیدا میکنیم و عشقی که در زندگی حاصل می شود نوعی مسئولیت پذیری به دنبال دارد. ولی در واقعیت همه ما فقط امانتدار پروردگاریم. او روح الهی را در کالبود انسان دمیده. و به صورت امانت به ما تحویل می دهد و هر زمان که اراده کرد به شیوه‌های مختلف از ما می‌گیرد فقط باید سعی کنیم امانتدار خوبی باشیم و لیاقت آن نعمت بزرگ را داشته باشیم تا بتواند به ما اعتماد کند همه انسان‌ها با داشتن دین و مذهب و عقاید متفاوت از هر نژاد و قوم و قبیله‌های مختلف که باعث نزا و جنگ و سطح اختلاف که منجر به کشدارهای بیگناهانی می شود که هیچ نقشی در جنگ و درگیری های قومی و قبیلهی و غیره نداشتند. هر آدمی از روز تولد دارای روح پاک الهی است و تکه ای از خدا در وجودش دمیده می شود و این بدون استثنا همه انسانها را شامل می شود اما مشکل از وقتی شروع می شود که آدمی دوران پاک کودکی را پشت سر گذاشته و در نوجوانی و جوانی کم کم به بلوغ فکری رسیده و به تجملات به ظاهر زیبای دنیا علاقه گشته و در کنار روح پاک منوی روح مادیگری نیز در درون آدم رشد می کند. و در چون این اشخاص جاه طلب مالدوست که در جهت عکس روح معنوی گامبر می دارند و زندگی در دنیای مجازی را ترجیح می دهند، و اعتقادی به زندگی بعد از مرگ ندارند حال چگونه با داشتن عقل و شعور به چنین نتایجی رسیدند باید از خودشان پرسید البته چنین افرادی با هیچ دلیلی قانع نمیشوند، مثل کسی که خودش را به خواب زده نمیتوان بیدارش کرد البته منظورم از اشاره به این افراد جنایتکار و خلافکار و یا قاتلین بالفطره این بود که بگویم حتی همه اینها هم هنگام تولدشان درونشان روح پاک خدایی دمیده شده بود ولی در مسیر درست قرار نگرفتند. با این حال بارها دیدیم انسانهای مختلفی که به شکلهای گوناگون به سمت زمیر درون کشیده شدند و ناخودآگاه صدای خلب خود را شنیدند. یک نفر هنگام گوش دادن به موسیقی یکی با صدای آواز یکی هنگام خواب دیدن در خواب و یکی دیگر هنگام مطالعه کتاب و برخوردن به ای که زندگی او را دگرگون کرد خداوند همیشه از خود نشانه هایی برجام فقط با کمی دقت کردن باید به نشانه های او پی برد زیرا شناخته او تنها دلیل حقیقی زندگی همه ما انسان هاست وقتی هدف آشکار شد زندگی معنا پیدا می کند و آدمی دارای انگیزه می شود و با قدرت به سوی هدفش حرکت می کند بودن یا نبودن مسئله این است به قول خانوم دانشور گاهی آدمی میماند، بین بودن یا نبودن رفتن که فکر می کنی اتفاقی میافتد افتد میشوی. می, می بمانی رفتاری می که انگار باید بروی و این بلا تکلیفی خودش کلی جهنم است اعتمالا این جمله را از هر دستی بدی از همان دست به تو خواهد رسید را همه ی ما شنیدیم اما کمی متفاوت یکی رفته بود جهنم، درست موقع نهار رسیده بود. دید یک میز مستطیلی بلند، به تعداد زیادی همه روبروی هم نشستند و به جای دست قاشق و چنگال بلندی به دستانشان فست بود. و روی میز انواع غذاهای خوشمزه داشت چشمک میزد. ولی همه کسانی که دور میز بودند خیلی ناراحت و غمگین بودند و لب به نمی زدند. با اینکه معلوم بود گرسنه هم هستند. و ترجیح دادم سری هم به بهشت بزنیم وقتی وارد بهشت شدیم دیدیم همه دور میز نهار با همان دستهای قاشقی و چنگالی ولی همه خوشحال بودند و میخندیدند خیلی تعجب کردم با اینکه شرایط در هر دو مکان یکسان و مساوی بود افراد جهنم ناراحت و غمگین بودند ولی کسانی که در بهشت اقامت داشتند بسیار خوشحال و شاد بودند از راهنمایی که با من بود علت را جویا شدم و ایشان گفتند در جهنم قاشق و چنگال هایی که به دستان افراد وصل بود بلند بود و نمی نمیتوانستند غذا بخورند و گرسنگی میکشیدند گفتم در بهشت هم شرایط همین گونه بود ولی چطور غذا می خوردند راهنما گفت هر نفر به نفر روبروی خودش غذا میداد اینجوری هر دو نفر روبرو به همدیگر غذا دادند و در نتیجه همه شان سیر شدند و این مثال از هر دستی بدی از همان دست میگیری در اینجا که هیچ در هر کجا که باشد تأثیرش بارها و بارها برای همه ما است و ما همیشه شاهد بزرگی و کرامت الهی بودیم و دیدیم خداوند چگونه مراقب همه بندگان پاکش است این مثل بخشش و گذشت انسان را به نمایش میگذارد زندگی کردن زیاد هم سخت نیست به قول شاعر که میگه از ماست؟ که بر ماست ما همه می میدانند گوزش کار قشنگی بخشیدن باعث آرامش میشه و حسادت و غرور بیجا باعث کینه ورزی میشه به لحاظ تئوری فیلسوف هستند اما در عمل همه یا بهتر بگم اکثریت مردم کمی خودخواه میشوند و منتظرند اول یکی دیگه پا پیش بذاره تا زمانی که فداکاری رو جایگزین خودخواهی نکنیم زندگی همه ما سخت میگذره پس یکی از راه رسیدن به رویای معنوی خودسازی و خودشناسی میباشد آن وقت همه چیز به خودی خود درست می شود. فقط باید ایمان داشت به باور قلبی ایمانت را درون روح منوی حس کن و تا وقتی ایمانت قوی و قدرتمند باشد نگران چیزی نباش وقتی به دستانت نگاه میکنی میبینی در دستان خداست پس به ایمان باور داشته باش تا اونیز به امیدت روح معنوی بباشد. به قول شاعر آن کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه کند دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی دیوانه تو هر دو جهان را چه کند مولانا با همین دو بیت یک دنیا حرف زد التماس تفکر بعضی وقتها هنگام خواندن کتاب ناگهان به جمله‌ای برخورد میکن که زندگیت را دگرگون میسازد. فقط افسوس می‌خورم که چرا دیرتر متوجه شدم اما بازم دیر فهمیدن بهتر از آن است که هرگز نفهمیم. به نظرم زیباترین تفریح کتاب خواندن یا همان مطالعه می باشد. تنها موقعی متوجه کوتاهی عمر می شوی که نگران آن تعداد کتاب های هستی فقط دوست دارم ملک الموت وقتی به سراغم بیاید که کتابم نیمه تمام نباشد یا لاقل در زندگی بعدی به خاطر جهل و نادانی و بیسوادی یا خراف پرستی شاهد جنگ و کشتار انسان های متمدن نباشیم و برای زندگی نو بشر حتی برای حیوانات و جانداران روی زمین ارزش خایل شد. زیرا به قدر کافی جا برای همه هست. فقط اگر کمی از هرس و تمع و زیاد خواهی بکاهیم و باور کنیم به همان اندازه که هوا برای زندگی کردن وجود دارد، مرگ هم برای همه هست. اما افسوس فقط هرچی را که دوست داریم باور می کنیم، ولا غیر. از لحظه ای که ما پی به ماهیت وجود باطنی خود بردیم یعنی از مرز رؤیاها عبور کردیم دیدیم زمانی رؤیا خیال بود از وقتی به آرزو تبدیل شد دیگر امیدوار شدیم چون آرزوهایمان سالهاست که برآورده میشدند. اراده خود باوری، خودسازی و ایمان قلبی آری اینها ابزاری است برای رسیدن به روح معنوی اگر غیر از این بود که ما هنوز از درک خالق آجز بودیم. آنگاه نه تکیه از خدا بودیم و نه اشرف مخلوقات عالم. از استادم کمک خواستم پرسید کجا هستی؟ گفتم به درگاهش خیلی نزدیک شدم. حالا قدم بعدی چیست؟ استاد گفت تو قرار نیست کاری بکنی. فقط خودت را تسلیم کن. پرسیدم چطور؟ گفت فقط خودت را به او تسلیم کن. او خود تو را خواهد پذیرفت. و حالا باید بکوشیم تا به درک واقعی چگونه تسلیم شدن برسیم. تسلیم خدا شدن یعنی هر که هستم، هرچه هستم، با همه دار و ندارم تسلیم تو می شوم. سر که نه در راه عزیزان بود، بار گرانی است کشیدن به دوش. در تلاطم امواج زندگی با داشتن انگیزه های فراوان در جهت به ثمر رسیدن کتاب که طی چند ماه اخیر که برایم در اولویت قرار داشت به ناچار چند هفته ای از نوشتن فارغ شدم ولی به یاری خدا قلم دوباره به حرکت در آمد. و اما علت وقفه این بود که دو سه هفته پیش یکی از رفقای دوران ارتش که با هم در نیروی دریایی خدمت می کردیم، و هنوز یکی از بهترین رفقایم محسوب می شود آمده بود پیشم و چون تا حدودی از حال یک تیکر خبر داشتیم مدتی پیگیر بیماری همسرش بود و متاسفانه طبق معمول از دست ما نیز کاری بر نمی آمد مگر دعا کردن و پرسیدن احوالات همسر بسیار عزیز و گرامیش که از خواهر به ما نزدیک تر بود آن شب به حدی دوستم را ناراحت و پریشان دیدم که هرچه کلمه و جمله در مغزم بود به یک بار فرو ریخت مگر امید دادن اینقدر دشوار است من باید به کسی امید و دلداری میدادم که خودش سرشار از خوبی، پاکی و امیدواری در همه وجودش بود اقراق نمی کنم در هر زمان به دنبال این بودیم که غم و اندوه یا افسردگی را با شادی و نشاط و روحی فراوان جابجا جا کنیم به سراغ همین دوستم و خانومش می رفتیم البته منبع اصلی شوخی و خنده و ایجاد فضای بانشات بیشتر خانومش بود که هرگز من به یاد ندارم که ایشون عصبانی شده باشن و حالا شما تصور کنید که من باید جمله‌ای به دوستم میگفتم تا کمی آرام بگیرد در اینجا نصیحت من به کسانی که در شرایط مشابه قرار میگیرند بهترین جمله این بود سکوت البته هر جا گیر کردید سکوت اختیار کنید باور کنید جواب میده بزرگترین معجزه کائنات سکوت است زیرا سکوت سرشار از ناگفته هاست هلی پرسیدند منظور از ناگفته ها چیست؟ میشه کمی مختصر توضیح بدید؟ گفتم خیر، شما هم سکوت کنید بهتر است. کسی که زیاد حرف میزند کمتر فکر میکند و در نتیجه آدم دانا سکوت اختیار میکند. ببخشید کمی از موضوع اصلی خارج شدیم. یکی دو شب پیش با رفیقم تماس گرفتم و از حال همسرشون جویا شدم که خدا را شکت عمل کردند و مسیر درمان را آغاز کردند. و از آهنگ صداش نوای امیدواری به گوشم خورد و بسیار خوشحال شدم از رویای معنوی که در وجود همه ماست برایش دعا کردم رویای معنوی همون خداست و همه ما تکیه از خدا هستیم فقط کافی خودمون را تسلیم کنیم با ایمان قوی خودت را تسلیم او کن آن وقت نورش به تو خواهد تابید فقط ناامید نشو. تا حالا دقت کردید هیچ کس از زندگیش راضی نیست خیلی را می شناسم با داشتن شغل خوب، خانه و ماشین عالی اما وقتی پای درد و دلشان می نشینی یک بار نمی شنوی که با رضایت خاطر از زندگیش تعریف کند دائم از یک سری مسائل بیارزش کارهای روزمرهش قر می زند نجار از گران شدن چوب می آرایشگر از کمی مشتری و نانوا از خرابی آرد دولتی تنها قشری که ناله نمی قشر بیکار هستند زیرا حاضرند هر کاری بکنند تا فقط بیکار نباشند. عجیبتر از همه این که این روزها کتاب بسیار مفید روانشناسی یا کتاب سازنده در مورد ساختن زندگی، موفقیت در کار و همچنین امیدواری دادن در هر زمینه یا در هر مورد خاصی که بخواهی بسیار فراوان کتاب صوتی و تصویری در دسترس هست. اما متاسفانه اکثرا اشتیاق خود را به مطالعه از دست دادند اما غافلند از اینکه اگر کتاب بخوانند حداقل 50 درصد دردسرها و مشکلاتشون حل میشه درست انگار که چیز مهمی را گم کرده باشی و همون شی جلوی چشمانت هست و تو او را نمیبینی و تمام اینها بیدلیل دلیل نیستند فقط کمی درست فکر کنیم و ریشه یابی کنیم پارگی و از هم گسیختگی این زندگی را که چگونه سر و بدیم آنگاه تازه متوجه می که ایران از خودمان است. سردرگمی، ذهن پریشان و بیبرنامگی در امورات زندگی و بیتفاوتی به همه این مسائل که در واقع تیر خلاص را به خودمان زدیم. پس رفتن به سوی خودشناسی و خودباوری بهترین شروع پیدا کردن آرامش می باشد. آنگاه با تمرکز به ندای درونت گوش کن تا راه اصلی را پیدا کنی و این همون مسیریست که به خود آگاهی خواهی رسید. اما همیشه برای تلاش کردن و رسیدن به خط پایان یک امایی هست. یعنی همون مانع، اگر سر راه انسان ها مانه نبود، همه چیز بسیار راحت و آسان به دست می آمد. دیگر انگیزه ای نبود تا ما برای رسیدن به منبع الهی با نفس درونمون بجنگیم و با ایجاد ایمان و اراده بتوانیم توانیم قید لذتهای دنیاوی را بزنیم و از مادیات دوری کنیم و اندیشمندانه با دیدگاه معنوی به سوی رستگاری گام برداریم. زیرا وقتی توانستیم به خودشناسی ورود کنیم، تازه به دنیای مجهولات برخورد می کنیم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر؟ ننمایی وطنم؟ عواز به مولانا برخورد کردیم بله درست هد زدید برای رد شدن از مرز خودشناسی نیاز به برداشتن همین جواب داریم. تا وقتی که بتوانیم به مرحله بعد برسیم در واقع مرحله بسیار سخت و یا به عبارتی شاخ قول شکستن می باشد. حالا رسیدیم به مرحله خودسازی. این دو کلمه چقدر راحت و آسان نوشته می شود و زیبانیز تلفظ می گردد ولی اما در جرفای درونی همین خودسازی میلیون ها نفر و بلکه بیشتر نتوانستند عبور کنند. رؤیای معنوی دقیقا پشت همین عبارت است. آری، این همه مقدم چینی کلمات و جملاتی که از وجود هستی خارج شد و همچنان ادامه دارد، همه و همه برای رسیدن به رؤیای معنوی که اگر او را به شکافی نور واقعی عشق را لمس خواهی کرد. عشق الهی که در وجود تک تک انسانهای روی زمین نهاده شده تا شاید بشر دلیل واقعی خلقت خود و آفرینش را با تمام تک تک سلول درونش درک کند و تعمی شیرین عشق معنوی را چشیده و خود را تسلیم او کند. حالا می بینیم که راه به سرچشمه مشخص شد. پس مشکل کجاست؟ همونطور که گفته بودم به همین راحتی نمی توان از مرز خودسازی عبور کرد. حال باید دید که دلیلش چیست همه ما گاهی سرگرم بازی کامپیوتری شده بودیم که برای پیروز شدن در بازی های رزمی جنگی یا ورزشی با غول آخر آشنا شده ایم و تا او را شکست نمیدادیم بازی ادامه داشت ولی برای قهرمان شدن چندین بار بازی را تکرار میکردیم تا با هر زور و تکنیکی یا روش که میشد بالاخره موفق می شدیم غول آخر را شکست بدیم و قهرمان بازی می شدیم این مثالی که زدم بیشباهت به این موضوع خودسازی نبود. قص بزرگنمایی نمایی قول آخر را ندارم اما آدمی برای رسیدن به عشق معنوی و دیدن ذات الهی باید بتواند به خودسازی غلبه کند یا بر نفس خود پیروز گردد. اگر بتواند از خواسته های بی جای درونی مالند امیال نفسانی هرس و یا حرص و طمع و مادیگری را تحت کنترل خود درآوردن و سرکوب نماییم آنگاه روح معنوی در وجود ما رشد خواهد کرد و روح مادیگری دقیقاً دقیقا خلاف جهت معنوی کوچک و کوچکتر می شود درست مثل زمانی که ما به دنبال دلبستگی های بزاهر زیبا و شیرین دنیای مجازی بودیم و برای به دست آوردنش هر موانعی را رد می کردیم چه اخلاقی و چه غیر اخلاقی برای داشتن ماشین های آنچنانی و یا خانه های مجلل و زیبا هر بار که خانهی می بعد از مدتی برای من کوچک می و دنبال متراژ بالاتر بودیم همه اینها با پول معامله می و دوباره با دیدن خانه های و بزرگتر و رقابت هایی که باعث حسادت یکدیگر میشد و چشم های من از این داشتنها سیر نمیشد و بینیازی مالی تبدیل می به معامله های غیر انسانی با وجود این همه دارایی که میشد بسیاری از این بی ها را، پناه داد و دست بسیاری از کارتون را گرفت. آفل از اینکه مال فراوان آن هم از راه نادرست آدمی را بیره با قلبی سنگی ببار می آورد. به بار میآورد. بدین جهت هر بار از خدا تقاضایی کردم بیشتر بدین شکل بود که امیدوارم دستم را رها نکند و از من روی گردان نشود. ما اگر خواست در حق این حقیر لطف کند که البته ما هر روز غرق التافش هستیم و خودمان احساس میکنیم و اما زود فراموش میکنیم همیشه دعایم این بوده که ظرفیت این همه نعمتی که به من و خانواده ام داده به من بدهد تا ظرفیتش را داشته باشم برای شکرگزاری و دلیل اینکه این همه میکوشم که با خودسازی بتوانیم به خداشناسی برسیم و به سرچشمه الهی متصل شویم این است که وقتی وارد روح درون و ذات پروردگار شدیم آنگاه هیچ چیز مجازی نمیتواند چشم ما را تسخیر کند. آری هر چیز مجازی و ظاهری از بین رفتنی است یعنی فانی است. اوایل کتاب گفته بودم انسان در درون خود دو روح دارد. کتاب استاد یونگ به نام انسان دو روح دارد را ام ولی منظور استاد یونگ از گفتن دو روح این بود که ایشان اعتقاد دارند همه انسانها دارای دو روح هستند. یکی روحی نابالغ و جدید است. روحی که وارد جسم و کالبد می شود تا در دنیای فانی زندگی کند. و یک روح که خیلی قدیمی و شاید چند میلیون سال از عمرش می گذرد. که اگر در موردش خواستید بدانید باید کتاب زیبایش را مطالعه کنید. اما منظور من از داشتن دروه که در درون ما وجود دارد روح مادی و روح معنوی است که بنده حقیر از استاد و این دایر الهام گرفتم. به نفی باورهای من از اعتقادات این استاد بزرگ که پدر معنوی جهان لقب گرفته البته ایشان تا ماه گذشته دار فانی را ودا گفت و وارد دنیای اختری گردیده. امیدوارم روحش وارد دنیای معنوی شده باشد همونطور که در علم روانشناسی پدیدهی به همتا بود. جنین وقتی در رحم مادر رشد می کند کم کم در همانجا درونش روح الهی دمیده می شود و با وجود روح در جسم کودک شاهد قلب و مغز کودک می شویم صدای تپش قلب را می شنویم و رشد مغزی که در جمجمه کودک بارور می گردد و بعد از نه ماه یک روح در درون جسم پرداخته می شود و کودک وارد دنیای مجازی می شود و روح معنوی از بد و تولد یا بهتر بگویم، از بد وجود، روح در درون انسان گذارده و این همان تکهی از نور الهی یا به عبارتی همان خداست. زمانی که کودک رشد می کند و کم کم بزرگ می شود و با زبان همه مزه ها را می چشد و با دید چشم به زیبایی های دنیای مجازی خیره می شود و شروع به سخن گفتن می کند، تا وقتی در دنیای پاک کودکی خود مشغول بازی و یا فضای بچگانه به سر می برد، روح پاک معنوی را در درون خودش حفظ می کند. و همان روح معنوی در همه حال از او مراقبت و حمایت می کند. تا وقتی که از افراد بزرگتر از خودش پی به رفتار غیر انسانی مثل گفتن دروغ و دلبستن به وسایل بظاهر زیبا مثل دوچرخه یا ماشین و خوردن غذاهایی شور و شیرین، با مزه و غیره و غیره و در اینجاست که در درون او خواسته یا ناخواسته روح مادی شروع به رشد می کند و هر زمان که روح مادی بزرگتر می شود روح معنوی کوچکتر و کوچکتر در وجود کودک رشد می کند. وقتی به نوجوانی می رسد راه غلط و درست را میفهمد و خیر و شر کند خود نمایی می کند. و در اینجاست که نوجوان با عقل و شورش باید انتخاب کند. و صد البته خانواده و اطرافیان و همچنین محیطی که در آن رشد کرده و بزرگ شده به نحوی در انتخابش نقش دارند. نوجوان در حال رشد و تکامل جسمی رو به جوانی است. در درون خود روح معنوی و روح مادی را حمل می کند و در مدرسه خواندن و نوشتن نیز آموخته است. حال باید دید با توجه به ها و تربیتی که در خانواده داشته به کدام سمت میرود انسان برای امرار معاش و بقا خواه و ناخواه باید با توجه کس به کسب درآمد و تشکیل خانواده به دنبال کار برود. رفتن به دنبال کار یعنی نوعی تشکیل کسب درآمدی که در سن بالاتر بتواند خود خودکفا باشد و روی پای خود بیستد و وابستگی های فامیلی و خانوادگی را قطع کند به طور مستقل با منبع درآمدی که برای شروع زندگی ایجاد کرده اختیار زندگی و استقلال فکری را به تنهایی به دوش بکشد و باید انتخاب کرد. اما فکر میکنید انتخاب یک جوان یا بهتر بگویم رویای یک جوان که در فضای مجازی و دنیای فانی روش کرده با خوردن و خوابیدن و ورزش کردن، درس خواندن چه میتواند باشد؟ من نیز از این سن و سال و مرحله جوانی گذر کردم و باید بگویم 90 درصد آدمها همون جوانهایی در سن حساس و افکار در هستند. که فقط داشتن موقعیت مالی یا رتبه کاری در حد مدیریت یا ریاست بزرگترین آرزو یا رویای هر جوانی بود که اینها رو خوشبختی میدانست و سعادتمندی اما یک بار از خود نپرسید که با داشتن همه اینها آخرش چه خواهد شد یک بار از خودش نپرسید که اصلا معنی اینها یعنی چه از خدا زیاد شنیده بود و چون از کودکی در مکانهای مذهبی به طور کلی گفته بودند که این جهان نمیتواند بدون خالق باشد و خدا خالق همه ی آسمان ها و زمین می باشد پس بدون هیچ کم و خدا را در نهاد فکریش گنجانده بود و بدون کنجکاوی و تحقیق و بررسی قبول کرده بود اما او دیگر کودک نبود نوجوان هم نبود شعور و آگاهی او به حدی روش کرده بود که دنبال علت می گشت. من، او، شما و همه ی جوان های در سن او حال کمی بالاتر یا کمی پایین وقتی در تنهایی به کلافگی و به می میرسیم، از خودمان سوالهایی میپرسیم که جوابی برایش پیدا نمی کنیم. مثلا، من چرا به وجود آمدم؟ معنی این همه زندگی، در بدری، پولداری، بیپولی، زنده ماندن، وقتی قرار آخرش بمیریم، پس برای چه آمده ایم؟ برای چه باید برویم؟ سرنوشت ما از قبل نوشته شده؟ یا اینکه هر هرکی مسئول اعمال و سرنوشت خودشه؟ و بسیار عجیب و هنگام نوشتن غرق در افکار درونم بودم مثل یک ندای درونی از ذهنم عبور کرد و رویای معنوی نام گرفت. و من یقین دارم که خدا این اسم را به من هدیه کرد. زیرا رویای معنوی به خودی خود یک اسم الهی است. همه می دونیم با وجود خدای به این بزرگی و مهربانی هیچ رویایی تا عبد رویا نخواهد ماند. همه ما در کودکی سرشار از رویاهای بسیار زیبا و قشنگ بودیم. کم کم رویاهایمان به آرزو تبدیل شدند و آرزوهایمان یک به یک به واقعیت مبدل گشت. در نتیجه خداوند با بخشیدن فکر و اندیشه به انسان او را اشرف مخلوقات نامید. تا در بدترین شرایط انسان امید خود را از دست ندهد تا در همه حال از یاد او افل نشفیم و خیلی مایلم در باب ناامیدی مثالی بزنم که هرچه کوشیدم از این بهتر نتوانستم مثالی پیدا کنم نویسنده کتاب انسان در جستجوی معنا استاد ویکتور فرانکل که خودش و تمام خانوادهاش توسط نیروهای نظامی آلمان در اردوی کار اجباری فرستاده شدند شهری در لهستان که آلمانها در جنگ جهانی دوم در آنجا اردوی کار اجباری داشتند و چهار میلیون تن از اسرا به ویژه یهودیان در این اردوگاه به وسیله گاز، تزریق اسید فنیک، گلوله، دار، گرسنگی و بیماری از بین رفتند. آقای ویکتور فرانکل تنها بازمانده ی این اوسرا بود که زنده مانده و کتاب انسان در جستجوی معنا را نوشت. تا خاننده های این کتاب معنای واقعی امید داشتن را درک کند. جلوی چشمان استاد فرانکل همکارش را در کوره آدمسوزی سوزی در اون اتاقهای گاز می انداختند. و مردانی که برای کار زنده نگه داشته می شدند، از بیرون کلبه شاهد سوختن دودی که از دودکش اتاق گاز که در آن کوره آدم پذی بود بالا رفتن دود را نظاره می کردند. وقتی استاد فرانکل از یکی از نگهبانان اس اس آلمان ها پرسید اون دود اون دودکش برای چیست؟ نگهبان دلیل واقعی روشنی دودکش را گفت و استاد فرانکل تازه متوجه شد که قطارانش دیگر تبدیل به خاک سر شده بودند. و این مرد با دیدن همه اینها خودش را نباخت امیدش را از دست نداد تا الگویی باشد برای همه نسلها با مرگ جنگیده و زنده ماند تا با نوشتن همون خاطرات درسی باشد برای همه انسانهایی که در بدترین شرایط زندگی نامید نشوند و حتی برای دی از انسانهایی که در جنگ خوی وحشیگری و حیوانی را از خود دور کنند و انسانیت را جایگزین فطرت پاک خود قرار بدهند. نداشتن آگاهی و تحقیق نکردن و همچنین نداشتن مطالعه کافی در زمینه باورهای روحانی و عرفانی است. غافل از اینکه ذرهای تزلزل در باورهایمان باعث ضعیفی ایمان و تردید داشتن به خودی خود بیماری بی و نقطه ضعف بزرگی در خودسازی به وجود می آورد. به قول شاعر گرانقدر اتار، گر مرد رهی میان خون باید رفت از پای فتاد سرنگون باید رفت. پای به راه در نوو هیچ مپرس خود را بگویدد که چون باید رفت یک روز تصمیم گرفتم با آدمهای اطرافم در مورد ایمان و اعتقادشان نسبت به خدا یا خودشناسی صحبت کنم در واقع نوعی به چالش کشیدن بود و اگر راستش را بخواهید به دنبال سوژه بودم تا مطالب بیشتری برای نگارش پیدا کنم اما چشمتان روز بد نبیند طوری با من برخورد کردند که انگار این موضوع سالهاست که برایشان کوه شده و با تمسخور میگفتند تا هم وقت گرا برای من خیلی عجیب بود مثل این بود که مدت‌های یک فیلم را و اونقدر برایشان تکراری شده بود که دیگر حاضر نبودن دوباره دربارش حرفی بزنند. خوب که فکر میکردم میدیدم ما چقدر از ذات حقیقی فاصله گرفتیم. چرا کوچکترین تمایلی به پیدا نمودن اصلیت پیدایش در وجود خود نیستیم ریشه همه خلق بشر و ایجاد دنیای فانی و موجودات زیادی چه در کره زمین و دیگر كرات و کهکشان‌ها وجود دارند و اصلاً در جستجوی معنای زندگی آیا هستیم یا اینکه هنوز به آن درجه از شعور و آگاهی نرسیدیم تا بدانیم چرا به این دنیای مجازی می‌آییم و چگونه به خاطر دلبستگی های مادی و عاطفی ما یل نیستیم اینجا را ترک کنیم آیا اینها همش به خاطر این نیست که ما خالق را از یاد شاید هم باورهایمان را از دست داده ایم فشار زندگی و سختی هایی که یکی پس از دیگری ما را ول نمی کند و روی خوش را از ما دریخ کرده چهره خشن و بیرحم به ما نشان می دهد باعث این بی ایمانی و بی اعتقادی ها می شود ایراد ما در بی ایمانی نیست بلکه مشکل در راه و روش اشتباهی است که به ما نشان داده بودند. از بچگی ما را از جهنم میترساندند و وعده بهشت را به همه میدادند. مثلا در آن قدیم ها در منطقه دوردست یک کت خدایی از اعتقادات مردم بی سواد داشت سوء استفاده میکرد و زمینهای بهشت را به مردم میفروخت. و این مردم جاهل به خاطر اینکه از بقیه عقب نمانند زود پول جمع میکردند. و چند متری از بهش را از او می خریدند. آنگاه یکی پیدا شد که از کت خدا و زرنگتر بود آمد پیش کت و جهنم را کامل از او خرید خیلی هم ارزان بعد مردم آن منطقه را جمع کرد و گفت آهای مردم دیگر نیازی نیست زمین های بهش را بخرید وقتی مردم علت را جویا شدند او گفت من همه جهنم را از کت خریدم و هیچ کدامتان را در جهنم راه نخواهم داد پس بیخود پول خود را حرام نکنید و در طول تاریخ همه ما امثال چنین رویدادهای واقعی یا غیر واقعی را زیاد دیدیم و خواندیم که چه سوء استفاده‌هایی از جهالت مردم به نام دین و مذهب شده که امروز باعث بی‌ایمانی و بیاعتقادی گردیده تا ما از روح معنوی دور بمانیم در حالی که پس بکوشیم تا به نفسمان غلبه کنیم و در وجود خودمان من ذات الهی یعنی عشق واقعی و بی پایان را دریابیم و بکوشیم تا آنچه که ما درک کرده ایم به اطرافیان و کسانی که فقط در مشکلات و سختی ها بدون او دیگرفتند بگوییم که در شادی ها و آرامش داشتن ها نیز به یاد خدا باشند تا همیشه دستشان در دست خداوند باشد و او هرگز بنده را نامید نمی کند. در واقع نتیجه همه این حرفها این است که بگوییم هرگز و هرگز ناامید نشوید زیرا که این زندگی پایانی ندارد و مرگ آغاز زندگی دوباره است. یعنی به عبارت دیگر تولدی دیگر است. پس همیشه امیدتان به خدا باشد. خداوند می که در درون ما خودش را ببیند نبنده اش را. اگر ماهیت حقیقی ما معنوی است پس ما باید بیشتر شبیه سرچشمهای شویم که از آن الهام گرفته ایم. پروردگاری که ما را خلق کرده صبورانه منتظر است تا همنوا با هایش شویم آنچه خالق هستی از ما میخواهد در کردن همین مورد است همانطور که باید بیاندیشیم در دنیای معنوی نیستی وجود ندارد پس تجسم مخلوق بودن خالق نیز امکان پذیر نمی‌باشد دقیقاً مثل این است که یک کتاب را بدون نویسنده‌اش تصور کنیم نیستی واقعیتی مجهولانه است که هر کسی را وادار به اندیشیدن می‌کند خالق قابل دیدن نیست یا بهتر آن است که بگویم در دنیای معنوی نبودن بسیار با مفهومتر از بودن هست در کودکی هرگاه از بزرگترها خواستیم تا خدا را به ما نشان دهند جوابشان این بود ما قادر به دیدن او نیستیم زیرا او در آسمانها به سر میبرد کمی که بزرگتر شدیم و دوباره از خدا و چگونه دیدنش میپرسیدیم جواب این بود عقل انسان محدود است و قادر به درک ندیدنش نیست در حالی که جواب واقعی در فهم و درک ما بود ما همین الان هم خیلی چیزها را در دنیای مجازی نمیبینیم ولی قبولش داریم مالند غذاهایی که از طریق حس بویایی بدون دیدن استشمام میکنیم. یا حس عاطفی علاقه و دوست داشتن که قابل دیدن نیست اما به یکدیگر عشق میبرزیم اگر بنابود هر چیزی را که نبینیم وجودش را منکر شویم پس این همه نابیناییانی که با احساس قوی و ادراک خود پی به این همه مواردهای مجازی و غیر مجازی میبرند و همیشه هم درست حدس میزنند چگونه میشود نادیده گرفت استاد وین دایر در مورد وجود خدا در عالم هستی حرف بسیار غش که گفتنش بی ربط نمی باشد ایشان گفتند من به این نتیجه رسیدم که همه چیز از انرژی به وجود می آید همه موجودات از فرکانس های مختلف پدید آمده هند. حال هرچه در این ارتعاشات سریتر عمل کنند به معنویت نزدیکتر می شویم و در گمان از اینکه از کجا آمده ایم بیشتر می شود قلمی که در دست می گیرم و با آن می نویسم با اینکه ظاهرش جامد به نظر میرسد ولی اگر از طریق میکروسکوپ های قوی به آن نگاه کنیم متوجه می‌شویم که در واقع میدانی است از ذرات در حال حرکت که فضای خالی درون زرات آن وجود دارد. ساختار ارتعاشی مداد هم از انرژی تشکیل شده است، ولی چون سرعت آن کم است، در پیش چشمان من که تنها می‌تواند اشیاء را درک کند، جامد به نظر می آید. آن هم در داخل یک فرکانس خاص. من صدای مرغ مینا را میشنوم، هنگامی که در حال نوشتن هستم، با دانش محدودی که از قوانین فیزیک دارم آن اسوات ارتعاشی سریعتر از ارتعاش قلم دارند. روشنایی که از پنجره اتاقم به درون می‌تابد، از انرژی پرسرعتی بهره میبرد. و با چنان سرعتی این ذرات ریز در حرکت هستند که به رنگ سبز، آبی یا زرد ظاهر میشوند و این بستگی به مردمک های چشم من دارند که این نشانه های انرژی را دریافت میکنند. آنگاه باید انرژی های ارتعاشی ذهن را دریابیم که فراتر از فرکانس های دور هستند. با توجه به اینکه فکر هم یک صورت از انرژی هست، بالاترین فرکانس‌های اندیشه را به روش های خاص ارزیابی کردم و متوجه شدم هرچه این فرکانس‌هاست ها تر باشند به ارتعاشات انرژی نهایی که همان زمینه الهی خویشتن است نزدیک تر هستند. بالاترین ارتعاشات افکار همتراز با انرژی الهی است افکاری با ارتعاشات بالا نیروی زیادی در ما به وجود می آورد ولی افکاری با ارتعاشات پایین واکنش ضعیفتر به آزمایشات متخصصان نشان می دهد. منظور از این آزمایش در واقع به نوعی واکنش ها را سنجیدن است یا به زبان علمی و کمی ساده این گونه می توان گفت که انرژی دادن مثبت باعث شادی و قدرت در وجود هر کس می شود و انرژی دادن منفی باعث خشم و ناراحتی و ضعف در درون هر کس و یک حرف منفی حتی اگر واقعیت هم نداشته باشد باعث واکنش منفی شخص قوی می شود و او را ضعیف می کند برای اینکه حقیقت گویی به معنای ارتباط با خداست چگونه می شود با مخلوقش از چشمنداز کذب و خلاف حقیقت به دنیا نگاه کند؟ تمام دنیا از عشق ساخته شده و همه این جهان پهناور وجود عشق را توصیف می کند و در یک جمله می‌توان گفت خدا عشق است و هر کس که عشق نورزد خدا را نمیشناسد. آدمی یک عمر کار می‌کند برای مال آنگاه تمام اندوخته‌هایش را در درون گاوصندوق بسیار محکم و مجهز می‌گذارد و مجدداً با عوض کردن رمز گاوصندوق نفس عمیقی از ته می می‌کشد و شب راحت سر به بالی می‌گذارد و قبل از خواب دوباره نفس عمیقی کشیده تا خواب راحت و خوبی داشته باشد ناگهان یک لحظه حواسش می‌رود به چک امضا نشده که صبح زود باید به حسابی بریزد تا فلان همکار شراکتی مجبور نباشد به خاطر خالی بودن حساب چک را برگشت زده و شرمنده همکار خود بشود با خودش زمزمه می‌کند یک لحظه بلند شوم و سریع به گاف صندوق بزنم خیالم راحت تر است با هزار شک و تردید می رود و گاوصندوق را باز می کند و از چک خبر حاصل می کند و تا صبح هر بار به بهانه خوردن آب دست به آب رفتن و بهانه مختلف به گاوصندوق سرکشی می کند. صبح چک را به بانک برده و به حساب همکار عزیز واریز می کند تا شراکت جدیدی حاصل گردد و به دنبالش معامله های بسیار شیرین. فقط یک جارو هر چه فکر می کنم نمیتوانم سر در بیاورم. ما آدم ها کار می کنیم، زحمت میکشیم که بتوانیم در آسودگی خیال، شب را در آرامش سپری کرده و برای خود و خانواده زندگی خوب و راحتی فراهم کنیم. ظاهر قضیه خیلی شبیه به زندگی خوب و آرامش بخش میماند، اما وقتی از حال تک تک اعضای خانواده کنجکاوی میکنیم، نه تنها هیچ آرامشی در آنجا نمیبینیم، بلکه رشته اصلی خانواده را که پیگیر میشویم به طور باور از هم گسیخته و سعادتمندی واقعی را دور از انتظار میبینیم. فقط به نوعی تجملگرایی و بینیاز از پول و اصراف آن بدون آنکه شرایطی ایجاد کنند برای کمک به تعدادی افراد نیازمند و جالب اینجاست که از سرمایه به دست آمده بیشتر در جهت بالا بردن آبروی سرمایداری و به رخ کشیدن تجملات و زرق و برق مادیگرایانه که حتی کوچکترین تأثیری در رشد کمالگرایی ندارد در حالی که با وجود چنین می توان دل بسیار زیادی از انسانهای محتاج را شاد کرد کمترین حرکتی که میشد برای خیلی از آدمهای نیازمند انجام داد در گرمای طاقت فرسای تابستان برای بسیاری از این خانهها که حتی یک خنک کننده کوچک هم ندارند لااقل برای هر یک پنکم میشد خرید و دل کودکان این افراد کمی شاد میشد کمک کردن به نیازمندان فکر کردن زیاد نمیخواهد فقط کافیس لحظه خودت را جای آنها بگذاری تا پی بینیازشون نیازشون ببری من معمولا برای پولدار شدن هرگز دعا نمیکنم زیرا میترسم حس انسان دوستی در من بمیرد به همین دلیل همانطور که قبلا اشاره کردم از منبع درونم خواستم که اگر قرار شد پولدار شوم ظرفیت پولدار شدن را هم به من بدهد زیرا وقتی به انسان کمک می کنی و خنده رضایت را در چهرهش می این خنده و این رضایت قلبی را با هیچ ثروتی نمی توانم از کرد وقتی با بخشیدن یک بیسکویت ناچیز دل کودکی را شاد می کنی و خنده بر لبان کودک ظاهر می کنی باور می این خنده را با هیچ چیزی نمی شود مقایسه نمود برای اینکه بتوانیم آیندهای روشن بسازیم باید از ریشه شروع کنیم. برای اینکه سازندگی از پایه به درستی صورت گیرد باید برای دنیای کودکان ارزش و اهمیت بسیار قائل شد. زیرا همین کودکان امروز با تعلیم و تربیت و پرورش درست سازندگان آینده‌ی فردا خواهند بود. برای هدایت آنها باید بکوشیم تا بتوانیم نتیجه مطلوب بگیریم. منظورم از آیندهای روشن و زندگی نوین این است که مردم دیگر از مشکلات و نابسامانی ها و گرانیها خسته شدند و اکثریت به دنبال زندگی بدون استرس و داشتن کمی آرامش به از جنگ و مشکلاتی نظیر جنگیدن هستند و در لابلای این همه گرفتاریها در گوشه خلوت و دنج کمی هم به یاد خدا میافتد و در اولین فرصت به جای دعا کردن از او گله میکند که خدایا این هم شد زندگی که ما داریم و این دقیقا همان اشتباه است که اکثر ما انجامش می دهیم. در حالی که خدا همان قادر مطلق و بی انتهاست که هرگز نباید رهایش کنیم. او در وجود ماست. بارها به ما گفته من با شما هستم. با قدرت حرکت کن. هرچی که می فقط اراده کن. ایمانت را از دست نده. من از درون خودت با خودت حرف می زنم. هیچ کس از من به تو نزدیکتر نیست به چه شک داری برو جلو نترس زیرا در وجود تو قدرت بی انتهاست فقط باورش کن به همین راحتی خداوند از طریق ندای درونش با ما حرف میزند فقط باورش کن هرچی که داری دور بریز دور همه موانع را کنار بزن تمام فکر و ذهنت را به او واگذار کن تسلیم منبع درونت شو روح معنوی درونت را دریاب. وقتی اینشتین در دانشگاه‌های ایالات متحده سخنرانی می‌کرد، پرسش تکراری بیشتر دانشجویان از او این بود: آیا به خدا اعتقاد دارید؟ و اینشتین همیشه پاسخ می‌داد: من به خدای اسپینوزا ایمان دارم. اسپینوزا فیلسوف هلندی از بزرگترین فلاسفه قرن 17 به شمار می‌رفت. و مایلم آخرین حرفهایم را با جملات زیبای اسپینوزا به ازمان برسانم که فرمود خدا میگوید دست از دعا بردارید کاری که من می‌خواهم انجام دهی این است بدونان که به کسی آزار برسانی از زندگی لذت ببری از همه چیزهایی که برای تو ساختم دیگر از رفتن به آن معابد بزرگ و کوچک که خودت ساخته ای دست بردار و نگو آنجا خانه خداست خانه من در کوه ها و جنگل ها و رودخانه ها و دریاچ ها و سواحل است من در همه جا با تو زندگی میکنم و عشق خود را به تو ابراز میدارم از سرزنش خود در زندگی دست بردار من هرگز به تو نمیگویم مشکلی داری یا گناهکاری مرا به خاطر هران چه باور تو را برنگیغ سرزنش نکن اگر نمیتوانی مرا در طلوع آفتاب در منظری زیبا در نگاه دوستان در چشمان عزیزان در ذره ذره وجودت دریابی و ببینی مرا در هیچ کتاب مقدسی پیدا نخواهی کرد دیگر از من نپرس که چگونه کارم را انجام میدهم به عقلت رجوع کن خواهی فهمید دست از ترس من بردار. من تو را نه قضاوت می کنم، نه انتقاد. نه عصبانی می شوم، نه عذیت می شوم. من عشق خالص هستم. تقاضای بخشش را متوقف کن. چیزی برای بخشش وجود ندارد. اگر تو را ساختم، پر از احساسات، محدودیت ها، لذت ها، نیاز ها، ناسازگاری ها، اراده آزاد، و اندیشمند ساختم اگر به چیزی که در تو قرار دادم پاسخ دهی چگونه میتوانم تو را سرزنش کنم چگونه میتوانم تو را مجازات کنم که چرا اینگونه هستی اگر من آنم که تو را ساخته فکر میکنی آیا میتوانم مکانی برای سوزاندن همه فرزندانم که رفتار بدی داشتند ایجاد کنم چه خدایی این کار را میکند به دیگران احترام بگذار آنچه را بر خود نمیخواهی برای دیگران هم مخواه تنها چیزی که از تو میخواهم همین بیازاری است به زندگی خود توجه کن. اندیشه و خرد راهنمای توست محبوب من این زندگی نه امتحان است نه یک قدم در راه نه یک تمرین نا ای برای بهشت این زندگی در اینجا و اکنون تنها چیزی است که به آن نیاز داری من تو را کاملا با اراده آزاد و عقل و خرد خلق کردم نه جایزه نه مجازاتی نه گناه نه فضیلتی هیچ کس سابقه ای را ثبت کند در زندگی کاملا آزادی بهشت یا جهنم من به تو نمی گویم که آیا چیزی بعد از این زندگی وجود دارد یا نه اما می توانم یک نکته را به تو بگویم طوری زندگی کن که انگار بعد از این زندگی چیزی نیست این تنها شانس برای لذت بردن و دوست داشتن است بنابراین اگر بعد از این چیزی وجود نداشته باشد از فرصتی که به تو داده ام، لذت خواهی برد و اگر وجود دارد مطمئن باش تنها چیزی که از تو می این است که آیا از زندگیت لذت برده ای؟ چه چیزی یاد گرفته ای؟ به چه حدی از کمال رسیده ای؟ آیا کسی را رنجانده ای؟ آیا به کسی آزار رسانده ای؟ دیگر از ستایش و مدح من دست بردار من نمیخوام به من ایمان داشته باشی میخوام که به خود ایمان داشته باشی میخوام وقتی مشهور خود را میبویی وقتی دختر کوچک خود را لمس میکنی وقتی عزیز خود را نوازش میکنی وقتی در دریا استحمام میکنی مرا در خود حس کنی نیاز به ستایش ندارم اگر احساس قدردانی میکنی این را با مراقبت از خود، حفظ سلامتی، بهبود روابط خود و دنیا ثابت کن، شادی را ابراز کن. این راه ستایش من است. دیگر چیزهای پیچیده را متوقف کن و آنچه را در مورد من آمخته ای یک بار دیگر مرور کن. به معجزهی بیشتر نیاز داری، این همه توضیح. تنها چیز مطمئن این است که تو این جایی و زنده و این دنیا پر از شگفتی است. پس انسان باش و زندگی کن. وقتی به اون درک والا برسی یعنی عشق خالص به خالق وجودت آنگاه او می شود همه داراییت، همه هست و نیستت، همه بود و نبودت و همه رویا و آرزویت و دیگر هیچ. رسیدیم به آنجایی که رویاها به آرزو تبدیل می شوند. آرزوها واقعیت پیدا می کنند و نور معنوی در درون ما شکوفا می گردد و سرانجام شاهد ظهور رؤیای معنوی خواهیم شد و محقق شدن رؤیا بر همگان ثابت می گردد. پس رؤیاهایتان را جدی بگیرید. تمام.